خدا و دربان وارد هشتی اول شدند از پلهایی که در زاویه دیگر هشتی قرار داشت بالا رفتند و رسیدند به دهلیزی چهار گوش که پنجره مدوری وسط دیوارش کار گذاشته بودند پنجره به میدان بزرگی باز میشد. دربان در زد مردی صرف کنان پرسید کیه؟ دیگه کیه؟ دربان گفت یه مریض آوردند مرد لاغری با گیوههای پاره و پیرهن سفید بیرون آمد گوشی بزرگی را مچاله کرده و چپانده بود تو جیب پیرهنش و تخمه می شکست بیرون که آمد به کت خدا خیره شد و گفت این که مریض نیست دربان گفت مریض پایینه تو اتاق آزر سه دکتر های تو هم رفت و گفت چرا بردینش اونجا من حوصله ندارم هر دقیقه برم تو اون دخمه کسافت بعد از پله ها آمد پایین کت خدا و دربان هم به دنبالش از هشتی و حیات و هشتی دوم گذشتند و پله ها را رفتند بالا آزر که بچه به بغل جلوی در ایستاده بود کنار رفت دو بچه دیگر که وسط اتاق استخان مک میزدند برگشتند و نگاه کردند رمضان ترسید و رفت جلوی پنجره دکتر با آزر گفت بازم این طولارو آوردی مریضخونه ببرشون بیرون آذر اشاره کرد بچه ها ها را انداختند زمین و رفتن توی راه رو آزر خودش هم رفت و پشت در ایستاد و از شکاف در قندیل را نگاه کرد دکتر جلو رفت و لحاف را از روی نن رمضان زد کنار مگس های آشنا را دید که رو صورت مریض ریسه شده بودند چشم ها خشکیده و غبار آخرین ساعت در مردمک های پیرزن شناور بود دکتر به کتخدا و پسرش گفت شما دو دوتا بریم بیرون رمزان و کتخدا و دربان رفتند بیرون دربان گفت حالش خیلی خرابه کتخدا دربان را کشید کنار و گفت اگه پیرزنه بمیره پسرم خودشو میکشه دربان گفت باورت میشه؟ کتخدا گفت آره ده شبانه روزی که از بغل مادرش کنار نرفته من میدونم که پیرزن تموم کرده دستم به دامنت کاری بکن که پسره نفهمه دربان گفت خیلی خوب اتاق که خلوت شد دکتر یقه مریض را باز کرد بدن سبز پیرزن سرد میشد دکتر گوشی را روی سینه مریض گذاشت قلب از حرکت افتاده بود اما صدای خفه و نامفهومی شنیده میشد دکتر عصبانی برگشت و در را باز کرد و به آذر گفت چند دفعه بگم که وقتی من مریض میبینم اسباب بازی دست بچه ها نده آزر بچه ها را نشان داد که ساکت روی پلهها به انتظار نشسته بودند دکتر برگشت و گوشی را روی سینهش گذاشت صدای زنگوله آرام آرام دور شد و در انتهای بیابان خاموش شد دختر مشتی بابا سرمه کشید آمد پشت بام نشست و یلیها هیچ کدام بیرون نبودند پاپاخ رو دیوار خانه کت خدا نشسته و سر را روی دستهایش گذاشته و خوابیده بود مشتی بابا توی اتاق دراز کشیده و با هنابستش بازی میکرد و از سقف سخف قرمز دخترش را نگاه میکرد اسلام سوار گاری وارد ده شد و رفت کنار استخر سطن را پر کرد و گرفت جلوی دهان اسب اسب آب خورد بوز سیاه اسلام از پنجره آمد بیرون و رفت کنار گاری و یونجا له شده را که به چرخهای گاری چسبیده بود لیست زد شب میرسید همه منتظر بودند. سرها را از پنجره ها بیرون میکردند و گوش میدادند جاده خاموش بود. دختر مشتی بابا غمگین لب بام نشسته بود. رمضان خوشحال در اتاق دربان نان و ماست می‌خورد. ننش ساکت شده بود و ناله نمی‌کرد. شمدی رویش کشیده بودند. دربان گفته بود که باید عملش بکنند تا راه بیوفتد. و برای این کار قرار بود فردا صبح ببرندش مریض دیگر هر سه در اتاق دربان ماندند رمضان که شامش را تمام کرد دراز کشید و خوابش برد اما دربان و کت خدا تا نسبه های شب آهسته صحبت می کردند دربان چم و خم کارها را به کت خدا یاد می داد. چراغ را خاموش کردند و دراز کشیدند بیرون باد میآمد و شاخه درخت بادام را روی شیشه پنجره می‌کشید. صبح دربانو کت خدا بلند شدند. پاورچین پاورچین از اتاق رفتند بیرون و ننی رمضان را از اتاق آذر آوردند پایین و گذاشتند روی نیمکت هشتی. در را باز کردند و به خیابان رفتند و منتظر ماشین بودند تا مرده را به قبرستان ببرند که رمضان بیدار شد و آمد بیرون. دربان گفت میخواییم نده تو بفرستیم مریضخونه دیگه عملش بکند. رمضان گفت منم باهاش میرم. دربان گفت اونجا رات نمیدن. رمضان گفت «اگه رام ندادم برمیگردم و میام اینجا. ماشین سیاهی پیدا شد. دربان چانه زد و کت خدا نن رمزان را بغل کرد و برد توی ماشین و نشست. رمضان هم نشست بغل دست کت خدا. ماشین را افتاد. دربان نگاهشان کرد سر خیابان که رسیدند آفتاب زد و راننده برگشت و گفت چرا مریض و اینجوری مچالش کردی؟ نکنه؟ ها؟ نکنه؟ کت خدا گفت ما سر کوچهش پیاده میشیم سر کوچه بنفشهزار راننده چیزی نگفت رفت و رفت در میدانچه خلوتی ایستاد آنها پیاده شدند کوچه درازی روبرویشان پیدا شد که پر گرد و خاک بود تخت سنگ سیاهی هم نپش کوچه افتاده بود. علم کوچکی بالا سر سنگ زده بودند با پنجه ای مسی. کتخدا به رمضان گفت تو همینجا بشین من ننتو میرسونم و برمیگردم رمضان گفت منم بات میام من میخوام ننمو ببینم. دستش را دراز کرد که دست مرده را از لایی لحاف بگیرد. کتخدا گفت دست بهش نزن اگه بیدار بشه دیگه خوب نمیشه. تو همینجا بمون. اگه بیایی رامون نمیدن اون وقت چه کار میکنیم؟ رمزان نشست روی تخت سنگ خورجین نان و ماست را گذاشت روی زانوانش کت خدا ننه رمزان را کول کرد و وارد کوچه شد پای سیاه شده ننه از لای لحاف افتاده بود بیرون. انگشت های دراز و از هم باز شدهش خاک های نرم کوچه را شیار میزد رمزان به شیارها نگاه میکرد که هر پدرش جلوتر می رفت دراستر می شدند. آفتاب گرم و سوزان بود باد متعفنی میوزید و علم را بالا سر رمزان تکان تکان می داد. توی کوچه صدای چرخا و زنگوده ها پیچید رمزان خود را کنار کشید کلاسکی سیاهی پیدا شد که دوتا اسب چاق و چله می کشیدندش. از زوارهای بغل کلاسکی. زنگوله های کوچکی آویزان بود. که وارد میدان چه شد و ایستاد. اسبها نفس تازه کردند و به طرف خیابان شلنگ برداشتند و زنگوله ها را به صدا درآوردند. کاراسکی که از میدان بیرون می‌رفت، از زیر پرده‌اش شمع بزرگ و سبزی به زمین افتاد. چرخها از کنارش گذشتند. اسلام و مشتی بابا سوار گاری بودند دختر مشتی بابا با چشم های سرم کشیده نشسته بود ته گاری لب جاده انتظار می‌کشیدند. اسلام گفت فکر نمی که دیر بکنن پیرزن حالش خیلی خراب بود سوار ماشینش که می داش داشت چونه می انداخت. هر طوری شده بیداشون میشه. مشتی بابا گفت کت خدا مرد خداست تا میت رو کفن و دفت نکنه بر نمی گرده. جاده خالی و خلوت بود. دختر مشتی بابا با چشم منتظر به طرف شهر نگاه میکرد. اسلام ناگهان برگشت و به کف جاده خیره شد. دو موش گنده آرام آرام پیش می‌آمدند. اسلام از گاری پیاده شد. موشها راهشان را کچ کردند و از بیراهه به طرف بگل راه افتادند. اسلام شلاق به دست رفت طرف موشها، موشی که جلوتر بود، شمع بزرگ و سبزی به دهان داشت اسلام که میخندید مشتی بابا را صدا زد مشتی بابا رفت پهلوی اسلام خم شدند و نگاه کردند اسلام گفت پدر ها رو دارن شمع میبرن بیل مشتی بابا گفت یه دونه شم میبرن و عوضش دو خروار گندم میخورن اسلام با لگد افتاد به جان موش ها. موش اول شام را انداخت و در رفت و موش دوم زیر پای اسلام لهول ورده شد. مشتی بابا شعم را برداشت و نگاه کرد و بو کشید و گفت چه کارش بکنم؟ اسلام گفت ببرین بدیم به دختره نگر داره واسه شب عروسیش چطوره؟ مشتی بابا گفت خیلی هم خوبه. برگشتند و شعم را دادن دست دختر و چپخهایشان را چاخ کردند و نشستند و رفتند تو فکر. کدخدا هر کاری کرد رمضان راضی نشد برگردد بده نشسته بود روی سنگ و می گفت صبر کن ننه بیاد اون وقت بریم کدخدا گفت ننه حالا حالا ها نمیاد ده روز دیگه میاد رمضان گفت ده روز دیگه راه میافتیم کدخدا گفت کارو زندگی ده را چی بکنیم رمضان گفت تو اگه میخوای برو من منتظرش میشم خدا نشست و عرقش رو پاک کرد لباس های پیرزن زیر بغرش بود. یک دفعه بلند شد و گفت: "گوش کن، اینجا نمیشه نشست. بریم پیش دربان مریضخونه و اونجا منتظرش بشیم. بلند شدند دو رفتند پیش دربان. دربان جلوی در مریضخانه را آب و جارو کرده بود. نشسته بود روی صندلی دم در و کاهو می‌خورد. خدا گفت: "بردیمش مریضخونه." چشمک زد و ادامه داد: "گفتن که ده روز دیگه میاد بیرون." اما رمضان نمیخواد برگرده ده رمزان گفت تو برو من با ننم میام دربان گفت خیلی خوب کت خدا تو برو رمضان میمونه اینجا و به من کمک میکنه یه هفته بعدش میفرستم میاد خدا لباسهای ننه رمضان را برداشت و کرایی ماشین رمضان را داد به دربان و قول گرفت که سر هفته رمضان را راهی بیل بکند رمضان و دربان رفتند تو دربان گفت تو اینجا تو این اتاق پیش من میمونی تا مادرت برگرده رمزان خورجین نانوماست را گذاشت زیر تخت دربان و نشست لبه پنجره دربان پول ماشین رمضان را زیر فانوس قایم کرد و خودش رفت دو رخت خواب و خوابید. رمضان آمد بیرون و نشست روی صندلی دم در و شروع کرد به خوردن کاهو کت خدا که وارد ده شد اسلام گاری را لب استخر میشست پاپاخ از بالای دیوار پرید و وقوق وق کنان دوید پیشواز کت خدا و او را بو کشید. دختر مشتی بابا رفت پشت بام و دید که کت خدا آمده با اسلام حرف می‌زند. برگشت، ها را برداشت و با عجله از ها گذشت و رفت کنار استخر و مشغول شستن و آب کشیدن ها شد. اسلام گفت: رمضان چرا نیمد خدا گفت میگه تا مادرم نیاد من نمیام اسلام ایستاد و زده ماهی ها را نگاه کرد و گفت بالاخره کی میاد خدا گفت دربان گفته یه هفته بعد میفرستم میاد دختر مشتی بابا حساب کرد یه هفته یعنی چند روز و چشمهایش پر از عشق شد اسلام گفت کاش می آوردیش میدونی که بعضی منتظرشن و به دختر مشتی بابا اشاره کرد هر دو برگشتن نگاه کردند دختر مشتی بابا بلند شد ظرف ها رو برداشت و راه افتاد وارد کوچه که شد پاپاخ و بوز سیاه اسلام را دید که ایستادند و نگاهش میکنند. دربان به خدا قول داده بود که سر هفته رمضان را بفرستد بیل و روز ششم به رمضان گفت رفته بودم مریضخونه مادر مادرتو به این زودیا مرخص نمی کنن. تازه پدرتم که پول و خرجی برایش نداده، تو بیا فردا ده و پول بردار بیار. رمضان قبول کرد و قرار شد صبح آفتاب نزده راه بیفتد، شب زودتر از همیشه سر رسید، دربان و رمزان رفتند تو اتاق و در را بستند که بخوابند، باد می آمد. آنها صدای آذر را میشنیدند که از درگاهی پنجره خم شده بود و به بچه هایش می گفت میگفت: میبینین که باد چه کارا میکنه؟ باد کسافات و پنبههای آلوده را از حیات برمیداشت، بدن میکرد و میبرد بیرون. دربان شام نخورده پتو را کشید سرش و خوابید. رمضان نشست کنار دیوار و شاخه بادام را که شیشه پنجره را میخراشید تماشا کرد. صداها قاطی بود و هر چند دقیقه صدای دکتر از طبقه بالا می آمد که در را باز میکرد و توی راهرو سرفه صرفه می کرد و فحش میداد. رمضان رمزان همانطور که مواظب به صداها بود خوابش برد نسبه های شب بیدار شد صدا می آمد صدای آشنایی می آمد صدای زنگوله از توی باد می آمد. گوش داد صدا. نزدیک و نزدیکتر شد و جلوی در بیرونی ایستاد و بعد دستی آرام روی کوبه در افتاد و آهسته در را به صدا در آورد رمزان نگاه کرد دربان بیدار نشده بود در اتاق را باز کرد و رفت توی هشتی صدای دکتر را شنید که توی رخت خوابش صرفه می کرد رمزان جلو رفت صدای نفس نفس کسی از پشت در می آمد. در را که باز کرد ننش را دید که لباسهای نونواری پوشیده رمضان خوشحال رفت بیرون و دست ننش را گرفت هر دو با عجله دور شدند باد شدیدی می وزید و آنها را جلو می راند. از دور دست صدای زنگوده های دیگری شنیده می شد رمضان گفت کجا میریم ننه میریم بیال ننه گفت بیال نمیریم میریم به نفشهزار. فردا صبح کت خدا و مشتی بابا و اسلام سوار گاری شدند و رفتند کنار جاده منتظر شدند پاپاخ و بوز سیاه اسلام هم رفتند و ایستادند کنار گاری پایلی‌ها هر چند ساعت یک بار می آمدند بیرون از کنار استخر جاده را نگاه میکردند و برمیگشتند های غروب مشتی بابا که اخمایش تو هم بود پرسید مگه نمیاد مگه نگفتی که میاد قد خدا دلواپس جواب داد گفته بود که میفرستمش. تا حالا که خبری نشده شب که شد دختر مشتی بابا از پشت بام رفت پایین و شمع سبز و بزرگ را برداشت و آمد بیرون رفت طرف تپه تا در نشانگاه روشن کند